اول تصمیم بگیرید هر تغییر مثبتی در زندگیتون با یک تصمیم واضح و صریح برای شروع به انجام یک کار یا دست از یک کار شروع میشه تغییر قابل ملاحظه وقتی شروع میشه که تصمیم میگیرید به چیزی وارد و یا از چیزی خارج بشید به چیزی بچسبید یا اون رو رها کنید مصمم بودن یکی از مهمترین خصوصیات مردان و زنان موفق و خوشبخته راه پرورش مسمم بودن تمرین و تکرار دوباره و دوباره است تا وقتی که براتون مثل نفس کشیدن یک کار طبیعی بشه حقیقت تاسف اینه که اشخاص به این دلیل فقیرند که هنوز تصمیم نگرفتن پولدار بشن اشخاص به این دلیل چاغ سالم هستند که هنوز تصمیم نگرفتن لاغر و سالم بشن افراد به این دلیل وقت تلف های کم بازده هستند که هنوز تصمیم نگرفتن در تمام کارهاشون پربازده باشن همین امروز تصمیم بگیرید که هر چقدر هم که طول بکشه و هر چقدر هم که نیاز به سرمایه گذاری داشته باشه در مدیریت زمان و کارایی شخصی ماهر بشید. همین امروز اراده کنید که این اصول رو بارها و بارها به کار بگیرید تا براتون عادت بشه. خودتون رو منذبت کنید تا کاری رو که میدونید برای بهتر شدن در رشته کاریتون لازمه رو انجام بدید. شاید بهترین تعریف انضباط شخصی عبارت است از, از توانایی وادار کردن خودتون به انجام کاری که باید بکنید در زمانی که باید انجام بدید چه حالش رو داشته باشید و چه حالش رو نداشته باشید معلومه تا وقتی که حال انجام کاری رو دارید انجامش راحتتره. اما وقتی حالش رو ندارید و باز هم خودتون رو وادار می کنید، اون رو به هر حال انجام بدید زندگی و کارتون رو در مسیر ترقی میندازید چه تصمیمهایی لازمه بگیرید تا در مسیر حرکت به سوی رأس رشته کاریتون قرار بگیرید هر کاری که باید شروع کنید و هر کاری که باید کنار بگذارید همین امروز تصمیم بگیرید و دست به کار بشید یک عمل میتونه اصولاً جهت زندگی شما رو عوض کنه